بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا وآله الطاهرين اللهم بیایید بحث لغت رو بخوانم که حالا یه مقداری مدعث رو خوندیم بعد وارد بحثی میشیم یه دوست نکته هم داره بهتون خواهم کنیم اللغه دیدید؟ اللغه اش شرح شرح فتح و شیف. به ما یسد عن ان ادراکه. فتح یعنی باز کردن یک چیزی رو مثلا فتح و صدر به ازهاب. ازهاب یعنی از بین بردن با از بین بردن آنچه که یسد مانع میشه عن ادراکه از درکش یعنی شما یک مانعی وجود داره از اینکه یه چیزی رو درک کنید شما بیایید گسترش ایجاد کنید که این مانع بگید برطرف بشه و بره حالسه درست شو اینو بهش میگن چی بهش میگن اشرح شرح یعنی وسعت دادن گشایش دادن یعنی اون چیزی رو که مانع گشایش بوده اونو برطرف کنیم این میشه شهر پس میشه فتح و به اضحاب به اضالت ما یسد و ما یمنه و ان ادراکه و اصل و شرحه توسه شرحه یعنی وسر دیگه خورم معناش مشخص فرنو اضحابو من اضاله کردم که شما معنا رو متواجدشید اول اضحاب کندم بعد معنا کردم اضاله یسد رو هم کردم یمنه که بتونید با مترادف چکار کنید معلوم. معلوم شد و یو برای ان سرور به صحت القلب و شرفی از خوشحال شدن که لازمه این درکه یو برای ان سرور یعنی سرور انسان به صحت القلب میگه خدا دلش باز کرد ها دیدید میگن دلش تنگ شده ها حالا دلش باز شد شرح صدر پیدا کرد به سعت القلب و شرح القلب یا شرح صدر و ان الهم هم یعنی دلشوره دل واپسی هم یعنی نسبت با آینده نگران باشه برخلاف غم که نسبت به گذشته قمگینه هم نسبت با آینده است میگه و ان همه یعنی یعب برا ان همه حتف به جای ان سرور یا عبر و عنل همه به میگم دلش گرفته دلش تنگه لعنهو یورس و ظالک میگیم چرا اینطوری گفتن چرا به خوشحالی گفتن شرح ببگو بعد حالی دلشوره گفتن آ؟ چرا میگه چون لازمش اینه چون لازمه اونها بگید لازمه اونها هم و سرور لازمه شرح صدر است و بگید زیر قلب است لازمه وقتی دل آدم تنگ میشه آدم غمگینه محمومه وقتی دل آدم باز میشه آدم مسروره لئن هو یورس ذالک زیرا این مطلب رو به ارث میاره یعنی شرح صدر سعه قلب سرور رو میاره برس همم زیغ قلب هم بگید هم میاره برس اینا لازمه شد ولوزر وزر چیه؟ از سقل و لغه و منهو اشتق اسم الوزیر اسم الوزیر از این گرفته شده لتحملی اصقال الملک چون بارهای سنگین پادشاه وظایف سنگینش او به دوش میکشه و این نماستون میاد از زنوبا اوزارن گناهان را هم بهشون گفتن اوزار لا تذر و واضرتون وزر اخرا لما یستحق و علیها لما یستحق و علیها من قابل از این. چون استحقاق داده میشه بر این گناهان به خاطر اون چه استحقاق این گناهان است اون چیه منال قابل عظیم. چون اقاب عظیم دارد به گناه گفتن وزر به گناه گفتن وزر چون کیفر سنگین داره مشغل شد اقاب سنگین سنگینی توشه رو سنگینی توشیم ول انقاز ینتق زبه ها ما هملا هم علی انغاز چیه؟ میگه الاسقال و لتی بارهای سنگینی که کان ینتق به ها کان ینتقزو یعنی بگید، به صدا درمیاد میاد به واسطه این بارهای سنگین ما ما، آنچه که هم بله علیه آنچه که هم شده این بارها برون یعنی اون چیزی که این بارها رو گذاشتن روش باعث میشه که اون بارها بگیردن حتی شما اینطوری دستانتون رو صدا بزنید، اینطوری تختخت صدا کنه کمل اینو بهش میگن نقیز فرقع یو فرقع فرقع اصابعهو فصومع نقیزون این بار سنگین رو کمر کسی گذاشته باشه مثلا اینکه بار سنگین رو کرسی بگذاری روی قعدت رو گفتم اون صدای تق که کی میادونه بهش میگن چی؟ نقیس میگه عل اسقا عل انقاز عل اسقال اللتی کان ينتقز بها ینتقظو بها یعنی به اون اسقال ما یعنی چیزی که حمل علیه ها چیزی که این بارهای سنگین هم به جای این هم بهتر بود بگه چی چی بگید؟ هملت که بخوره به اون بارهای سنگین علیه بخوره به ما هم بهتر بود بگه چی بگید؟ هم ملد الاسخالالتی کان ینتق زبه ها و صدا پیدا میکنه به واسطه این بارها ما چیزی که مثلا کرسی که هم ملت این بارها علیه حودجی که این بارها برش هم ملت بهتر یعنی هم ملت درست و نقض و حدم و واحدون نقض و حدم نقض و حدم انتقض و ان حدم بگید به یک محن است یا در هم شکستن و نقزل مذهب حالا هی داره همینطور کلام نقض مذهب یعنی چی؟ میگن فلانی مذهب خودش رو نقز کرد آقا قدیم بوده مثلا از مذهب شافعی رفت به مذهب هنفی یا از مذهب هنفی آمد به شافعی میگن نقض مذهبش کرده یعنی چی؟ یعنی ابتالهو به ما یفسده یعنی با چیزی که اون مذهب رو فاسد بکنه اونو باطلش کرده درست شد؟ یعنی کاری کرده که اون مذهب را بگیر از اعتبار انداخت یعنی اون مذهب رو دیگه بگو قبول ابطال او به ما یفسد و باطل کرده اون مذهب رو با چیزی که اون فاسد کرد و بعیرن نقض و سفرن یعنی چی بعیر یعنی شطور نقض و سفرن یعنی اذا از سفر نقض و سفرن یعنی منقوز و سفرن یعنی شطوری که سفر اونو به تق تق وادار کرده و کرده یعنی حسابی سفر برای او بگو سنگین شد این هم بالی حالا نسب چیه؟ داشتش که فعضا فرقته بگید فنسب این نسب نیست و نسبه میگه یعنی عطب هم وزنن هم معنن و انسبه الهمم الهم یعنی این دلشوره او یعنی خستهش کرد شد یا نشد خسته کرد فهو اون کسی که بگو خسته شده بهش میگن چی منسب خسته شده درست شد؟ منسب و انسبه الهم فهو بگید منصبان قال شاعر حالا ببینیم منصب هم میگن هم منصب میگن مثل و مثل واللیل مبصرا مبصر مبصر منصب منصب قال شاعر تعنا ک هم من من عمیمت مثا حالا منصب ببین نگاش کنید، گوش کنید گوش کنید من گفتم هم منصب میگن هم منصب اما منصب بکی میگن منصب بکی یعنی الان داشتیم انصباهو آل کدومش منصب کدومش منصب هم در شوره اونها های انسبه ها زید منسبه نشد یا شد؟ اسم فایل و مفعول درست شد؟ فهوه منسبون منسبون منسبش مال همه منسبش مال اون آغاست که از گرفتی چی شد یا نه؟ حالا نگاه کنید تعناکه این تعناکه تعنافه تعنین دیگه تعنا یه تعنا تعنیان. یعنی نسبه یعنی تعبه خسته کرد تعنل امره این متعدیه ها تعنا که چون متعدی معناش یعنی قاساهو با قاف سین قاسا و یعنی چی ترجمش یعنی دست و پنجه نرم کرد درگیر شد مشخص شد قاسیتو یعنی باهاش بگید درگیر شدم دست و پنجه نرم کردم قاسا هو یعنی باهاش درگیر شد پس تعناکه یعنی چی درگیر شده با تو چی درگیر شده با تو همون همون نکره است الوهیت در تعظیم میکنه دلشوره ای عظیم این دلشوره ای عظیم از کجاست که با تو درگیر شده من امیمه از خانومه بگید امیمه دلشوره و دلواپسی عظیمی از جانب امیمه با تو بگو درگیر شده با تو درآمیخته نشد یا شد همون من اینجا منصف باید بخونیم صفت ای گفتید؟ همون من متا یه صفتش همان یه صفتش منعومهی مست یه صفتش منصف حالا ترجمه چی میشه؟ بگو درگیر گشته با تو تننا درگیر گشته با تو کاف چی؟ همان دلشوره عظیم دلشوره عظیم از جانب امیم خانم دلشوره ای بگید از پادر خسته کننده گرفتید یا نه از بین برنده دلشوره ای از جانب امیم خسته کننده از پادر با تو درگیر گشته است شد یا نه ترجمه شاید سر منصف اما یه چیز دیگه هم میگن گاهی اوقات به جای منسب میگن ناسب ناسب یعنی خسته ولی دلشوره که خسته نمیشه مجازه یعنی ای که بگید ذاتش خسته کنندگی ذاتش خستگیست یعنی زو نصب ناسب یعنی زو بگو ناصب، پس ناسب هم میگن و همون ناسبون یعنی زو بگو نسب نصب نسب چی بود مناش؟ تاب یعنی قصه و ای که زو نسبن صاحبه بگید تاب است صاحبه هست نه نه اون این نیست نه اون بله این نیست این نیست قال ان نابغتو نابغی زبیانی ببینی چی میگه میگه کلینی کلینی لهمن یا اومیمت ناسبی ناسبن درست کلینی لهمن یا اومیمت نا 7 ولایلن اونوره مصرعشون بن شعرش قشنگه اخیری یکی از یا امیمته یا امیمتو ولی یا امیمتن 90 درصد دیوانشه درست شو کنینی لا همن یا امیمتو یا امیمتنا صبی ولایلن ولایلن مسئله دو داره پایین اها و لیلن من من کتاب نداره از صرف و لیلن او قاسا و الان براتون گفتم مناش چی بود دست و پنجه نرم کردن درگیر شدن و لیلن او قاسیه بطیئن کواجبی درست شو بطیئن کواکی کلینی وکلا یکلو یک فلا همدش میشه چی؟ وکلا یک کلو کلا کلو کلی داریم تو دعا لا تکل نا الا انفوس نا ترفت عینن عبدا کلی کلینی، کلی نی یعنی چی؟ منو به خودم واگذار کن. یعنی دعی نی دعی نی دعی نی لهمن لهمن متعلق است به کلینی به خاطر این قصه و دلشورهی که دارم یعنی به جهت این یعنی با این قصم هم. لهمن همن است دلالت بر چی میکنه؟ بگید تعظیم آقا منو با این مرگی که دارم منو با این قصه عظیمی که دارم فرو گذار منو ول کن با این بدبختی خودم یعنی دیگه سر به سرم؟ نزار منو به این قصه ای که دارم فرو گذار ناسبن یعنی چی؟ زونسبن سبن قصه ای که خسته کننده است خستگی جزء ذاتشه منو با این قصه ای طاقت فرسایم بگو فرو گذار ولیلن عطف رجای کجاست؟ حالا یا اومیمه یعنی چی؟ اون جمله معترضه است یعنی ای اومعیم خانم به معشوقش میگه منو با این قصه طاقت فرسای خودم بگو فرو گذار نه نه جمعه معترضه است جمعه معترضه جمعه معترضه میاره که توجه طرف جلب کنه دیگه همان داشته وسطشون میگفته گفته منو با این قصه با تو میگم اومعیمه فرا دیر و خسته کننده هم فرو گذار اون وسط نیارم ناسبی و لیلن جای کجاست لحمن و من با این قصه و این شب و شب چون شب بر عاشق خیلی سخت میگذره طولانی قصه ها به شروع می‌کنیم ویلن اوقاسیه و شبیه که باهاش دست و پنجه نرم می‌کنم، از این وعده اون ور می‌گلتن بطیء الکواکبی. بطیء صفت دوم لیل است. اضافهش اضافه لفظیه، یعنی کواکب ان کواکبوه. شبیه که ستارهاش کنده، یعنی ستارهاش تکون نمیخوره از تاریکی، منظور یعنی بسیار بسیار چیه؟ بلنده. ها؟ شب عاشق، شب فراغ، شب بلند است. ناب میگه کلینی لهمن یا امیم تناسبی و لایل نوغاسیه بگید. بتهایل کوا کبی. خوب شایدش کجا بود؟ نسبن ناسب. که به معنای زو نسبن. پس نسب یعنی تب. تا. تا اینجا اینجای مطلب تمام شد. حالا بیایم سر بحث خودمون داشتیم و رفعنا لکه بگید ذکرک و رفعنا لکه بگید ذکرک و رفعنا لکه ذکرک لکه هم گفتیم مثل اون لکه و انکه به خاطر ابهام و تفصیل چی شده؟ جلو افتاده یادتون افتاد یا نه؟ آره ابهام و تفصیل خب و رفعنا لکه ذکرک ای قرننا ای قرننا ذکرکه به ذکرنا یعنی قرین کردیم ذکر تو را بگید به ذکر خودمون هر کجا اشهد و هنن. لا اله الا الله اشهد و انه. لا اله الا الله گفتن آ اشهد و انه. لا اله الا الله گفتن همون جا هم اشهد و انه حتی لا اوز کر الا و توز کر معی یعنی چی؟ جوری که من ذکر نمیشم هیچ کجا مگر اینکه تو هم با من ذکر میشی یعنی فلعظان ول اقامه ول تشهد ول خط به علل منابر به هر کجا هست نام من میاد نام تو هم بگید کنار من انل حسن این از حسن بسری نخشده و غیری شد یا نشد رفعنا لکه که ذکر و قال قطاده رفع الله ذکرهو فه الدنيا ول آخر. رفع الله ذکرهو فه الدنیا ول آخره. فلیس خطیبون بنابراین نیست هیچ خطیبی ولا متشهدون تشهدگوی ولا صاحب و سلاتن. کسی که نماز بخواند الا و یونادی هیچ کس نیست مگر اینکه ندا میدهد مگر در حالی که ندا میده به اشهد اش و الله اله الا الله و اشهد انم محمدن رسول الله صلی الله عليه و علیه و, و سلی پس این رفع ذکر دیده و فل حدیث و در اون حدیث مشهور هست از کی؟ ان عبی سعید خدری از عبی سعید خدری از راویان مشهور آمه ان النبي صلی الله عليه و علیه و, و از نبی گرامی اسلام ابو سعید خدری نقل کرده فی ها ذهل در زیل همین آیه قاله. قال لی جبرائیل پیغمبر میفرماید جبرائیل به من عرض کرد قال الله عز وجل خدای تعالی فرمود اذا زکر تو زکر تمایی یعنی چی هر کجا من خدا ذکر شوم تو هم در کنار من میگه و فيهاذا يقول حسان ثابتن ثابت يمده النبي و, و در همین رابطه گفته حسان ثابت ها حسان ابن ثابت يمده النبي اگر رو اگر رو یعنی هو اگر رو خبر مبتداه محضور علیه لنبوت خار تم من الله مشهورون یلوه و یش حد اقر رو یعنی هوه اگر اگر کیو میگر؟ یعنی نورانی چهره ها؟ قرد جمع همینه درست؟ رو علیه لنبوته خاتمون علیه لنبوته خبر مقدم خاتمون مبتدا مؤخر میگه مشهور است نورانی چهره است که بر او به خاطر نبوت خاتمیست است بر او لنبوته به جهت نبوت خاتم است یعنی خاتم نبیه من الله خاتم است از جانب کی خدا خدا او را خاتم انبیا قرار داده بر او مهر مشهورون یلوه و یشهد مشهور است یلوه و میدع و بگید یشهدو شهادت میدهد یعنی خاتمون، من الله، مشهورون، یلوه و یشهدو اینا همه صفت خاتمه ها من الله، مشهورون، یلوه و یشهدو صفتی که؟ خاتمیست برای نبوت بر این پیام بر ما خاتمیست نگی نیست که از جانب خداست همه میشناسن، میدرخشد و شهادت میدهند که هم این کارشو یلوحو می درخشد و یشهدو و شهادت میداد و پیامبر است. و زمله الاهو اسم نبی الاسمیه یعنی چی؟ و چسبانده از خدای تعالی علی الاه داره. خدای تبارک و تعالی قرار داده است اسم نبی اسم این پیامبر را ها؟ اسمهی اسمیه در کناره بگو. اسم خودش اذا قال في الخمسه الخمس صفت موصوف مقدره یعنی از صلوات خمس زمانی که بگوید در بگید نمازهای پنجگانه گانه المعذن و فاعل قال است اشهدو اش چند تا نقطه اشهدو سه چهار تا نقطه می‌ذارید یعنی وقتی میگه اشهدو خدای تعالی اسم پیامبر در کنار اسم خودش قرار داده موقعی که معزن بالای منبر بالای معزنه داره بگید ازان میگه اونجا رفعنا الک نشد یا شد فهمیدید چرا و زممل الاله اسما اسم ال اسمه ای اذا قال قال شرط جزاش به قلینه قبل افتاده یعنی اذا فل ف ال خمسه المؤذن و اشهد و زممل الاله اسم النبي رسمی نه نه مفعول قاله است قال فل الخمسه یعنی فصلوات الخمس. بگوید در از های پنجگانه المعزن یعنی هر شخص معزنی هر کسی در هر کجا لام داره الفلام محصول عامه هر شخصی از آن بگوید در نمازهای پنجگانه تو هر سرزمین و هر کجا تا بگوید اشهدون خدا واجب کرده اسم پیغمبره بذاره کنار اسم. و شبق لهو من اسمهی لهو فضل عرش محمودان و حازا محمدون این شعر باید ماله کیه؟ ماله حسان ابن سابت شاعر پیانبر ست شاعر داشت پیانبر یکی حسان بود حسان ابن ثابت یکی کعب ابن زهر و دیگری عبدالله ابن رواه اینا شاعرهای بیغمبر بودن ولی این شعر سومش بیتش مال عبو طالبه قصیده ای دارد حضرت عبو طالب که در اون مده پیامبر رو میکنه و این تزمین کرده یعنی حسان اومده از حضرت عبو طالب یه شعری رو چکار کرده تزمین کرده به عنوان شعر خودش این بیت سوم مال عبو طالب حضرت عبی طالب عجیب است که حالا حضرت عبی طالب رو بعضی از معاندین ها حالا منباب اناده با امیر المومنین بعضی ها در اسلام عبو طالب چه شک میکنن این خیلی حرفه یعنی چیزی که واضح حتی توی تاریخ هم شما بگردید این شعرها هم شعرها تنها چیزهایی که میمانند و دستگاه الان این شعر همون اولش تا آخرش گفتن این شعر تا منم خونده بودم این شعر ماله ابو طالبه و به عنوان بیت سوامیشون چکار کرده؟ تزمین کرده میگه و شق قلهو و شق و, و خدا مشتق کرده برای پیامبر من اسمی از اسم خودش یعنی خدا از اسم خودش یه اسم برای پیغمبر چکار کرده؟ این شق قلهو من اسمهی اسم. مفئولش چی شده؟ افتاده نه؟ متوجه شده یا نه؟ بزنبارش. یعنی اسمی از اسامی خودشو خدا گرفته از اون یه اسم برای پیغمبر درست کرده؟ درست شده یا نه؟ وشقلهو یعنی برای پیغمبر من اسمهی از اسم خودش خدا اسمن مفئولون بهش چی شده؟ بگیر، هست شده ها؟ خب؟ چرا از اسم خودش اومده؟ اسم درست کرده؟ برای پیغمبر؟ برای پیامبر لیوجه لحوی اطفاست به جای شرقه. چیز متعلال است به شدقه برای که پیغمبر اجلال کنه پیامبر رو بگید بالا ببره لک میگه پس بنابراین این فافای نتیجه است بنابراین زلعرش محمود رو خود خدا اسمش محموده بعد اومده از محمود یه مشتق دیگه آورده و هازا یعنی پیغمبر هازا یعنی پیامبر اشاره بکنم و هازا محمدو بود شد یا نه؟ قشنگ گیشه که ابو آورده گفت نه در متن پیانبر یه قصیده یکی از عبیاتوشو ورداشته آی حسان توی این شعرش استفاده کرده قافیهش هم دال بوده بر همون اومده. شبقد او من اسمحی لوجلله فضل عرش محمودان و هاذا بگی ثم بعد او صبحانه حالا دقت کنید صبح بعد او صبحانه او عوس رو و رخوا بعد از این بعد اینجا یه مقداری کارلو رو سخت میکنه نه؟ میگه صبح وعده او صبحانه او عوس و ر بعد از شدته. سپس خدا وعده داده خدای سبحان به پیامبر یسر و رخا رو بعد از شدت بعد از شدت یا مع ما شدت ها درست شد نه مع است بعد نیست درست این عبارت رو بنویسید ببینم این عبارت رو بنویسید میتونید با این عبارت ادبی قربه اليسرى قربه باقاف قاف قربه اليسرى المترقبه المترقب قبه مترقب یعنی چی مورد نظر قربه اليسرى المترقبه با بله نه مترقب یعنی منتظر اونی که انتظارشو میکشیم آسایش مورد انتظار آسایشی که چشم براش میمالیم تو سختی اون آسایش مد نظر را قربن نزدیک کرده به لفظت معه، با لفظه با کلمه معه. درست شد؟ یعنی آسایشی که آدم در انتظار هست، انتظارش رو میکشه در سختی اینو خدا با لفظ مع گفته. التی هیا لسوحت. التی هیال لسوحت. اون معایی که برای بگو همراهیه، ها؟ معایی که برای بگو همراهیه. یعنی هر کسی کار سختی رو متحمل میشه در پیشکار خدا انتظار داره یه مزد بیاد یه یسری اون یسر رو مزد مورد نظر رو خدا با معه گفته معهی که دلالت بر بگید صحبت میکنه حتی جعلهو حتی جعلهو کل للعسر تو عبارت جوری کرده حتی جعلهو جوری که قرار داده است این یوس رو کلمغار نل العسر انگار قرین اسره داره میگه چی ان معل العسر یسر یعنی در کنار سختیه بگو آسایش یعنی هم وقتی داری زحمت میکشی آسایش هم اونجاست اینطوری گفته دیگه حتی جهل هم کلمغار نل العسر زیادتا چرا این کار کرده چون این آیات رو گفتیم برای چی خدا داده علم نش لکه صدق برای امتنان به پیغمبر لطف خودش به پیغمبر و تسلیت به پیغمبر ها؟ این تقریبا سال پنجاب ششم نازل شده فکر میبارم چهاردام این سوره قرآنه که برای پیغمبر نازل شده درست؟ بعد فی تسلیته زیادتا فی تسلیتهی و تقویتا لقلبهی برای خاطر این که تسلیت به پیغمبر بیشتر بشه دل پیغمبر محکم بشه نگفته ان بعد الاسره یوسرا یعنی بعد از سختی ها که تموم بشه یوس میاد جوری گفته که انگار یوسف در کناره بگید اسره ها و تقویتاً به قلبی جملت جمله ثانیته و جمله دوم جمله دوم کدومه ان مع الاسره یوسف تکریرون لجملتل اولا تکرار لفظیه تاکید لفظیه لل چرا؟ چرا؟ تکرار برای چیه؟ میگن کلما کرره قرره هرچی تکرار میشه برای اینکه جا بیفته کلما کرره قرره قرره را. تقریر بشه لتقریر معناها فن نفوس لتقریر معناها فل نفوس و تمکینها فل غلوب و تمکینها بگید فل غلوب پس چی شد؟ گفتش اگر مع گفته واسه خاطر که میخواسته شدت آمدن یسر رو کاملا نشون بده که انگار همین الان هست در همین آلی که دو داری سختی میکشی آسایش هم کنارته یعنی نقده. مزدش نقده مزدش نسیه نیست که بگیم بعد از عسر میاد ایشون میگه وعده او سبحانه او علی اوس روان رخا بعد از شدت و زالک انه کانه به مکه تا فی شدتن خوب گوش کن میگه این به این شک بود که پیغمبر اکرم در مکه در سختی بود شو و بیتاله خیلی سخت بود قال فانا معل اسرا یعنی ان مع الفقر سعتن. حالا مستق داره میگه که اینه یعنی من الفقره بگید ال الاسر من عرض کردم که این الاسر اون که با سیاق و آیه برمیاد منظور سختی رسالته یعنی در کنار این سختی رسالت این عجریه الله الان لا مزد وسیح هست درست میگه محل فقر سعتن ان این از این آقا نقل شده و قیل معناهو مع معش شدت انت انتفیها من مزاولت المشرکین یسرن و رخوان گفته یعنی با این شدت و سختی که تو درش هستی من مزاولت مزاولت یعنی درگیر شدن دست و پنجه درگیر شدن تو با مشرکین این شدتی که تو درش هستی از درگیری با مشرکین در این شدت یسرن و رخا آسایش هست یعنی سرانجام خوب هست به ان یوزهرک الله علیهم علیه چجوری توش و رخا به این که خدا تو رو بر اونها غالب میکنه یوزهرکه یعنی یقلب هکر خدا تو رو غالب میکنه بره. حتی ینقادولرحق تا جایی که مشرکین مطیع حق میشن الضی جئتهم به اون حقی که تو براشون آوردی یعنی اسلام توحید تو او کرهن این حال است مطی دین تو میشن توعا دل بخوا یا کرهن بگید بزور دل نخوا ها یعنی چه بخواند، چه نخواهن بگید مطی دین تو خواهند سمکرر ازالکه فقال بعد همین موضوع رو تکرار کرده فرموده اِنَّمَعَلْ عَسْرِ تمام شد روا عطا اون عن ابن عباس عطا از ابن عباس نر کرده قال که ابن عباس گفت یقول الله تعالی تو عسرن واحدن و خلقتو یوسره فلانی يقلب اسرم اسران ببینید ببینیدی یه استفاده ادبی میخوان بکنن ما اینو نمیپذیریم ما اینو از اول گفتیم گفتیم جمله نمهل اسرم يسرا عین جمله اولیه تکرار برای تقدیر اون تسلیت و به قول معروف دلداری پیغمبر میخواست اون مثلا بعدم ال اسرو گفتیم با اعتمال اون بالا که گفت علم نشرانک از صدر و و زانو انکفست درست شد؟ ها الزی انقزه زهره این منظور امر رسالته چون امر رسالته فهم نما در کنار این سختی های رسالت یسرن رضایت خداست یسر است اینو تاکیدم کرده بعدم گفت فایز آخر هفته فان سفا الی ربک فرقم پس بنابراین نشین اینجا بازار بازاریه که خودم خوب سود میکنه، داره تصدیت میده به پیغمبر میگه رضایت خدا اینجاست پس بکشت رضایت خدا را ارچ بیشتر جب. بعضی ها اومدن اینطور گفتن گفتن اگر کلمه این معرفه تکرار بشه این اولیه معرفه تکرار بشه نه. مثلا من بگم اشترعی تو الکتاب سمم بی کتابم من یه کتاب خریدم، همون یه کتاب رو هم چی کارش کردم؟ پروختم یک کتاب خریدم همونم؟ فروختم وقتی معرفه تکرار میشه خودش این از عدوی درست دارا اینو یا به قاعدش وقتی نجره تکرار میشه خودش نیست یعنی اگه گفتم اشتره تو کتابا سمبا به تو کتابم اینجا یعنی یه کتاب بگید خریدم یک کتاب دیگه فروختم گرفتی چی شدیم؟ معرفه وقتی تکرار میشه خودشه نکله تکرار میشه غیر خودشه این قاله را در, در نظر بگیرید و این دوتا جمله رو تاکید بگید ندونید این دوتا جمله رو تاکید بگو ندونی دو تا جمله جدا بدانید اگر اینطور باشه اون موقع اعلی اسره معرفه تکرار شده یسر بگو نکره است اون موقع یسر اول میشه غیر از یسر دوفم میشه فعل نما اصره این اصر یه دوناست تو جمله اول همون جمله یسر دو اسن دومیه فعل نما اعلی یسران و یسران کمی شو یوسفن گرفتی چی نه؟ <متحد> این اینه که اولا این دو تا جمله رو تأکید نداریم. درست شد؟ و جمله دوم رو تأکید نداریم. بعد بگیم یه بار گفته چی چی؟ مثل همون کتاب که من گفتم. ان نمال اصل بعد گفته "این نمال اصل یه که تکرار شده، یعنی این مشکل دو تا عواسمش کنارشه. یوسفن و یوسفن. شد نه؟ با توجه به این قاعده عددی این رو ببینی قاعده کاری نداریم ما اصلش رو ما نفذی رفتی. ما گفتیم جمله دوفان تاکیده بگید جمله اول تاکید لفظی میگه که خلق تو اسرا واحدن خدای تعالی گفته من یه عصر آفریدم یعنی یه عصر در عالم هستی قرار دادم خلخت و عسرن واحدن و خلق و یسرین اما دو تا یسر آفریدم یعنی تو این آیه دو تا یسر گفتم فلن یغلب عسرن یسرین عسرن نکره دلاره بر وحدت میکنه و هیچ وقت یه مشکل نمیتونه دو تا آسایشو از بین ببره یه منفی نمیتونه دو تا مثبت رو از بین ببره یه منفی با یه مثبت از هم میرن ولی یه منفی با دو مثبت هیچ موقع حریف نیست اینو آیه عطا از ابن عباس کرده که گفته خدا اینطور گفته و انال حسن از حسن بسیر نرک شده قال خرج نبی اینم داشته بازی یه بگید حدیثی رو از حسن بسیر نرکنه میگه خرج نبی یو سلی اللہ علیه و علیه و سلم یومن مسرورن فره ها روزی رسول خدا بیرون آمد در حالی که خوشحال و سرمست بود خیلی سرحال بود و هوی از حکم و, و کاملا میخندید رسول خدا و یقول و اینطور طور گفت لن یقل و اصر و نه. هیچ وقت یه مشکل و دو آسانی نیست یه منفی به دو مثبت زورش نمیرسه اینو گفت این کلامه آقای حسن تو این حدیثی که نقل از است پیغمبر به نوعی معید اون کلام آقای بگو عطا از ابن عباس هم بگید. حالا اینها میخاد بیاد ثابت بکنه قواعد ادبی ما رو به هم بریزه. ما عرض کردیم که این را نمیپذیریم. این آیه مشخص است اشاره به اون مسائل سختی پیامبری دارد در رسالت یسرش هم رضایت الهیست و آسایش نکره هم اومده دلالت بر تعظیم میکنه اصلا نیازی به این حرف ها هم بگید ندارد جمعه دوبام هم تاکید است تا این کلام باور بشه در تسلیت بیانبر تاثیر داره فَإِنَّ مَعَلْ أَسْرَ يُسْرَ اِنَّ مَعَلْ أَسْرَ يُسْرَ قال الْفَرْرَا حالا بینیم های فررا چی میگه اِنَّ لَعَلَبَةَ تَ عمو قاعده منو میگه ها ان العربه تقول ذکر ذكرت نکرتن ثم تها نکرتن مثل ما معلوم براتون نه فرا شاگرد کسایی از علمای کوفه است میگه اگر نکره رو سیک کردی بعد دوباره به شکل نکره مثل قبلی اعادهش کردی من نوشتم چی تو کتابن ثم بعتو کتابن صارتوا اثنتین اون میخوام میشن دو تا یکی خریدی، یکی فروختی دومی غیر از آمد. اولیست که قول نکر ازا کسبت درهمان به یه نفر میگی ازا کسبت درهمن فانفق درحمن. ها میگه اگر یه موقع درهمی کار کردی یه درهم دیگری رو بگو انفاق کن یعنی یه درهم رو که کار کردی نگهدار؟ یه درهم از درهم های ذخیره ای تو بگو انفاق گرفتی یا نه من اول مثالی که زدم دقیق تر از فصانی غیر اول اول درهم دوم باید غیر از درهم اول باشه بگو یه درهم کار کردی از مشت گرفتی این درهم رو بذار کنار یه درهم که قبلا کار کرده بودی از مشک سن گرفته بودی اون رو انفاق کن این اینو میگه فسانی غیر اول فائضه اعطتها معرفتا اما اگه اولی رو معرفه بود دومی هم معرفه آوردی فهیه هیه. اون دومی همون اولیه کقوله که کرد که اذا كسبت درهما فانفق بگید الدرهما اگر اون درهمی رو که دست فلانی گرفتی همون درهمه رو بگو انفاق کن درست شد نه همونو انفاق فسانی اول اول و نهو هاذا ما قال میگه این همین آقای زجاج هم از نهاد گفته ان هو ذکر الاسره مع و لام زجاج گفته خدای تعالی ذکر کرده الاسر رو با الف و لام ثم سنى ذكرهو سپس دوباره کرده ذکر او رو فسار المعنا میگه معنای این دوتا آیه در هم ادغام میشه دوتاش میشه یه جمله میشه ان معل اسره بگید یسره همراه با یه سختی دو آسایش هست فهمیده دشنش یا نه قاعده شو من رد نکردم ها اما اصلش در این سوره قابل پذیرش کدوم؟ اونی که ما گفتیم اینه که در کنار سختی های پیانبری در کنار سختی های کنارم کنار میگه و خاطره تسلیت به پیامبر دلداری و خوب یعنی یقینی بودنش در کنار سختی های سختی‌های رسالت مزدی و رضایتی عظیم از جانب خداست این جمعه دوباره تکرار کرده تحکید کرده اما مانونها این میشه که در کنار یه سختی دوتا آسانی دو است درست شو؟ دو دوتا آسانی دو است اولی آسیا که که بخاطر ادبیات ما دومی رو تأکید میگیریم و از نظر ادبی هم دومی درسته، اولی درسته از دومیه چون جمله اصلا تأکید. بعد میگه که دو تا نه اصلا کلی. دو بله دو برابر آسونی توشه. از نکرو از نکر و معرفه بودن یسر. این دومی بله باید تفسیر اونطوری بکنید وقتی میگی با اینجا باید معنا بکنید که یکی آسایش در دنیا روسفیدی در دنیا یکی روسفیدی در آخر یا بگی اصلا نه خداوند تعالی شما یه زحمت کشیدید دو برابر بهت مزد میده آم مگر ندودید تو سوره نور در مورد زنان پیغمبر چی میگه؟ میگه اگر شما بگو کاری رو انجام بدید ما دو برابر بهتون مزد میدیم به پیغمبرم میگه به تو دو برابر میدیم یه بحث دیگه است بله برعکسش هم در مورد اونجا هست و قال صاحب و کتاب ان نظم قال صاحب کتاب النظم نظم اینو دقت کنید <تصفيق> یه مبحثی رو داره به عنوان یه مطلبی ذکر میکنه که نیازه به اینه که شما اینو داشته باشیش خوب گوش کنید قال صاحب و کتاب ان نصب سعید مرتضو. فی تفسیر حافظه ال آیه در تفسیر این آیه اینو گفته ببینیم حالا مطلبش چیه میگه ان الله بعث نبی گوش کنید ان الله بعث اسان و هو مغلون و هو مغلون چیه؟ مخفون یعنی مغل بود بی چیز. مخف بود یعنی خفیف شمرده میشد. یعنی به قول خودمون به حسابش نمی آوردن و هوا ان الله اینالله بحث نبیهو و هوا مغلون مخف و کانت قرهشون تا به ذالک و قرش به خاطر همین مطلب او رو بگو تاییر می کردن. او رو به حساب چون دستش خالی بود درست شد جز سرانه پولدار قرش قدرتمند قرش بگو نبود و کانت قرشون تاییروهو تاییروهو یعنی تاییبوهو عیب برقون می کرد به زالک زالک یعنی به زالک اقلال و اخفاف به این دستیش. حتی قالوا له تا جایی که به پیامبر خدا گفتن ان کان بک من ها زل قول الذی تدعیه تلب الغنا جمعنا لکه جمعا حتی مالا که تكونك سر اهل مکه گفتم بابا تو اومدی هی ادعای پیامبری میکنی پیامبری پیامبری پیامبری ان کان لکه ها امکان بکر اگر در دل تو هست منحاز القول از این حرفایی که میزنی توحید و چیزهایی که میگی اگر در دل تو از این حرفایی که میزنی utiliz تدعی نسبت به این حرفایی که متلعی شدی اگر در دل تو هست طلب الغنا دنبال پول و ثروتی اگر تو دل تو به خاطر این حرفایی که میزنی این هستش که طلب ثروت بکنی خب اینو زودتر بگو جمعنا جواب اینه جمعنا لکه مالن مالن نکه نست بر تعظیم ما برایتون مال عظیمی جمع میکنیم حتی تکونه که ایسر اهل مکر ده. تا تو بشی یکی از بزرگان اهل مکر تو هم فکره هنبیگو هن زالکه خیلی بدش اومد پیغمبر از این حرف و زننن هو انما یکذبو هل فقره مغل و مخف به یک معناست یعنی توحید است کوچک شده شده میگه پیغمبر گمان بود که قومش اونو دارن بگو تکذیب میکنن به خاطر بگو فقرش لفقری فوعده الله سبحانه و الغنا پس وعده داد خدای تعالی به پیغمبر الغنا ثروت تو این آیه لی یسلیهو اما خامرهم من الرحم تا او تا تسلیت ده بده به پیغمبر دلداری بده به پیغمبر بزالک با این کلام با این وعد خودش اما نسبت با آن چه که خامرهو داخل شده بود به پیغمبر منال هم از دلشوره میگه اون دلواپسی و ای که اینا من فقیر هستم بگو دارن من رو به این دلیل تکذیب میکنن میگه این آیات به پیغمبر دلداری داد که دست تو باز میشه دست تو چیه؟ باز میشه فقاله فَا اِنَّ مَعَلْ اَسْرَ پس جواب داد که خدا بهش گفت اِنَّ مَعَلْ اَسْرَ یعنی در کنار این سختی های مکه یسر دوران مدینه هم هست این مکه رو تحمل کن تا در مدینه به گردسته باز میش. اینو ایشون بگه و او لا یهزن يهز كما یغونون یعنی چی؟ قمگین نکنه تو این چیزایی که اینا میگن و ما انتا من ال اقلال و ال نکنه تو رو اینا و آنچه که تو درش هستی از اقلال و اخفاف کمپولی چرا غمگین نکنه؟ فه این نمه الاسر ف دنیا زیرا با این سختی تو آسایش است در دنیا خیلی زود تو مدینه ثم انجز ما وعده سپس خدا وعده ای رو که داد وعده وفا کرد فلم یمت پس پیغمبر از دنیا نرفت حتی تا فتح علیه الهجاز تا اینکه که هجاز را بگید فرد شد براش مکه فتح شد یمن فتح شد حد تا فتح لهو علیه الهجاز و ما والاها من الغرال عربیت هجاز سرزمین حجاز و آنچه که بالای حجاز است اطرافش والاها از شهرهای عربی همش چی شد؟ فتح شد درسته؟ اینا همه این اطراف حجاز مکه و مدینه فتح شد و آم و ما والاها حتی فوت علیه الهجاز و ما حتی جای حجاز و ما والاها منالغرال عربیته و آمه تو بلاد الیمن تمام سرزمین یمن به گیدفت شد فکان یعطی علمعتی من ابل جوری دست پیغمبر باز شد که دیویس دیویس شطار عطا میکرد فکان یعطی یعنی یه بارم نه بارها و بارها پیغمبر کان یعطی علمعتی من ابل یعنی اینقدر دست باز شد که پیامبر چنین میکرد و یهب و الهبات سنیه و پیغمبر می بخشید الهبات بخشش های خیلی خیلی گرانبها و یه ادول اهلی قوت سنته اما این نبودش که دیگران دیویستا شطور عطا میکرد و بهشون هشون های سنیه میداد به زن و بچه خودش هم اینتور. نه تو سوره نور دیدید ها ان کنتون نه, نه. ها این کنن تردن الحیات دنیا و زینت آه فتعالینه امت کننا و وسره کننا سراغان جمیله اینها رو سر احزابه این ویل دل اهلی قوت سنته اما به اهل خودش قوت سنت قوت سنت یعنی چی مقدار بخورنمیری یک سال میداد بیشتر نه حتی دارد تازه یک سال رو قذاری تو کتاب خودش میگه یک سال رو هم به اون زنانی میداد که توکلشون کم بود به بعضی از زنانش که خیلی متوکله بودن و خیلی آرفه بودن به اونها گوت یک روز رو میداد گوت سنته سنبه ابتده فصلا آخره بعد خدای تعالی یک فصل دیگر نگاه کن این فصل این میخواد بگه تاکید نیست ها ف... یعنی اون فنه عمل و اسر دنیاست. مال این یه فصل دیگه است کشور این جمله معترض چیز جمله جدا است اون ان فنه عمل و اسر یوس مال دنیا است ان عمل مال دیگه اون ان عمل اسر یوسا تاثیری باز میشه تو مدینه همه کار میتونی بکنه الان میگه سمه در خدای تعالی فسلن آخره گشوده از یه فصل دیگه فقاله فقاله چی؟ این نمال اسره یسره و دلیل و الان ابتدائهی تعریح منفا و واف حالا میگیم آقا چرا این دنگوانی تاکید نباشه برای اول چرا یه جمله جداست؟ میگه و دلیل و الان ابتدائهی دلیل واریم که این جمله جمله بگید مستنفه جمله ابتدایی است. اینه که خالیست از فاو فا و... فاو نداره. یعنی مثل بگو. ما میگیم اتفاقاً نداشته باشه جمله‌ی بگید تأکیدی. جمله‌های تأکیدی یا با فا میاد، اون دفعه بهتون گفتم. یا با سومم میاد، یا بدون فاو سومم میاد. اگه با فاو سومم میاد، جمله دوم تاکیدش بیشتر از جمله بگو اول. این دلیلش ناقصه که جمله دوم چون فا واف ندارد پس جمله بگید اتفاقا چون فا و واف ندارد است. چون فا واف ندارد بگو است. و دلیل و علا ابتدائیهی تعریح یعنی خالی بودنش فا و واف و هو وعدون لجمی المومنین این دیگه وعد است به همه مومنین لانهو یعنی بزالکه مع العسر في الدنیا للمومنه یسرن في الاخره میگه زیرا میخواد بگه با عسر در دنیا برای مومن یسر در آخرت هم هست از تو بر پیغمبر باشه که این سختی ها آسایشه لسوفه یو اتیک فتر میتونه این باشه و روبما اجتم الهو اليسران میگه چه بسا هر دو یسر برای پیغمبر جمع شد یسر دنیا و هو مازو که رفت لآیت لولا یسر دنیا که در آیه اول ذکر شد و یسر آخره و هو مازو که رفت لآیت ثانیه فقوره صلی الله علیه و سلم لن یقلب و یسرین مازو و اینکه پیغمبر خدا طبق اون روایت حسن بصری گفتش لن یغرب و اسر و یعنی یسر دنیا و الاخره یعنی سختی این دنیا نمیتواند غلبه کند بر آسایش این دنیا و آسایش آن دنیا فل اسرا بین یسرین پس سختی بین دو تا آسایش واقع شده آسایش در دنیا و آسایش در اخرت اما فرج و دنیا و اما فرج و آخره سواب یکیش فرج در دنیاست موفقیت در دنیا و دیگری هم سواب در اینو آقای صاحب نظم گفته و این تیکه که از ایشون نقل کرد در واقع بر اساس تنظیم همون کدومه؟ این که جمله دوم تحقید جمله اول نیست و اصری یه دونه است یه دوتاست میگه و حازن زکر اهل و الجرجانی آه؟ میگه اینی رو که جورجانی من دوست ذکر کردم سید مرتزا نه؟ اشتباه لفظی کردم من کتاب نه از مال سید جرجانیه برشو شیقه برقایر میگه اینی که ذکر کرده آی جرجانی درست شد؟ و حازن لذی ذکر و الجرجانی یا عید و ما ذهب علیه المرتزا معید اونیه که سید مرتزا ذکر کرده آه سید مرتزا یا عید و ما ذهب علیه المرتزا قدس الله رو روحه حالا من انل قائل ازاغال درست که من انل قائل ازاغال شیعن سن مکرره این که اگر قائلی بگوید چیزی درست شد من انل قائل ازا غال اینکه گوینده اگر بگوید شیئا ثم مکرره هون بعد هم که اکرارش کنه فَإِنَّزْ فا ظَاهِرَمِنْ تَغَایُرِ الْكَلَامِنْ کلام، تَغَایُرُ و مُخْتَزَاهُونَ میگه ظاهر از تقایر دو دوتا کلام که دوتا کلام زیک کرده یه دونه زگ نکرد ظاهر از دوگانگیشون اینه که مختزاشون هم بگید یعنی اصلی که تکرار صورت نگیره حتی یکونه کل واحد من هما مفیدن لما لا یفید و لا اصل که هر کلامی تاسیس معنا کنه نه تاکید معنا دقت میکنی یعنی اصل اینه که هر کنوم از این کلام ها مفید معنایی باشه که اون یکی مفیدش نیست فیجه با معل اطلاق حالا گوش کنیم اگر یه جایی مطلق بود آ دلیلی نداشتیم که دومی تاکیده یا بگو تاسیسه دلیلی نداشتیم دومی تاکید معنواس یا بگو تاسیس معنواس میگه فیج با معل اطلاق حمل ثانی علا غیر مختزل اینجا لازم است که ما کار بکنیم دومی رو هم کنیم با چیزی غیر از مختصرا اصله که تاکید نگیریم مگر اینکه دلالتی بر تاکید وجود داشته باشه یعنی اصل ایشون میخواد بگه میخواد بگه اصل در کلام تأسیسه یک کسی دوتا جمله میگه دوتا مهنم میخواد بفهمونه مگر اینکه قرینه گذاشته باشه که ما دوگمی رو فمحل الكافرینم امحل هم, هم روغی دار اینجا دوگمی درسته فا نداره هم نداره ولی مشخصه که قرینه است دوگمی تاکیده بگه اولیه مشخص شده امحل هم روغی ولی اگر جزءی شک کردیم این دومی تاکیده یا تاکید نیست اصل رو که تاکید نیست فاگر با مع اطلاق هم لسانی الا غیر مختزل اول الا ازا الا اذا کان بین المتخاطبین او و دلالتو مگر اینکه این دو تا مخاطب بینشون یه قرینه ای باشه اهدی باشه یا بگو دلالت و قرینهی وجود داشته باشه متخاطبه این که دارم با هم حرف میزنن میدونه که میخواد اینجا تأکید کنه متوجه شدی وقتی قرینه‌ای نیست خب متخاطبه میفهم شما داری یه جمله ای به من میگی من میدونم که منظور دینی که این جمله رو تو گوش من بکنی دوبار گفتی اونجا یه قرینهی بگو حالیه پیدا میکنیم عهدی دلالتی باشه یهعلم و المخاطب و بزک انل مخاطبه راده به کلامیه ازسانانی اوولله. اونجا مخاطب وقتی بین این دوتا که با هم حرف میزنن همدیگر می, هم می شنان. مخاطب با به این کلام یه علم میفهمه، انل مخاطب میفهمه اون کسی که داره باعث صحبت میکنه، راده به کلام حسستانی، اراده کرده با سخن دوم خودش اله اولم اما اولی یه حرف مقاسب بزنه میدونه اینو. بهتشون ف یحملهو علا ظالک اون موقع کلام دوم هم بکنه به کلام اول چون قرینه داره شد یا نه؟ پس ایشون نظرش اینه که شیخ قاهر و سید مرتزا هر دوتا نظرشون چیه؟ بگو اینه که وقتی دو تا جمله میاد دوتا معنا داره پس فا این نمه الاسر یسرا این نمه یسرا دو تا جداست الاسرش معرفه است یه دونه است یسرش نکره است دوتاست اینو گفته سید مرتزا گفته و بگید شیخ عبدالقاهر جورجانی هم بیان کرد دلیل هم آورد حالا میخواد یه چند تا شعر مثال بزنه که تو این شعرها همین مطلب رو گفته کدوم مطلب رو گفته؟ این که معرفه اگه تکرار بشه میشه یکی نکره اگه تکرار بشه میشه دوتا میگه وانشده ابوبکر بکر ابوبکر انباری, ابو انباری اینطور گفته ازا بلقل اسرو مجهودهو یعنی چی؟ یعنی اگر برسد سختی به نهایتش مجهود یعنی نقطه پایان نقطه جهدش اگر برسد سختی به نهایتش فسق اندزاکه به یسرن سریع فواره وقتی به انتهاش برسه برمیگرده فسق جواب ازاز پس مطمئن باش اندزاکه یعنی چی؟ در این انگام که به نقطه اوج رسیده به یسرن سریع اینجا معتقد باش که یه گشایش سریع میشه عوضا خوب میشه علم تره میگه آیا تو ندیدی؟ نحس شتا الفضی نحس یعنی شدت آیا ندیدی شدت زمستان فضی غیر قابل تحمل ها زمستان سخت شدت زمستان سخت رو ندیدی؟ علم تره نحس شتا الفضی یتلوح و سعد و ربی البدی یطلوها یعنی چی؟ به دنبالش میاد به دنبال سرمایه شدید و طاقت فرسای زمستون میاد سعد آه؟ سعد یعنی سعادت سعادت بهار زیبا آه؟ سعد در مقابل نحس دیگه اون نهوزت و شدت زمستان سخت به دنبال او بهاره بگید زیباست بهار سعادتمنده پس بنابراین ان نه مال اسره یوسر اما این شعر آقای عبوبک میگه بعد از شدت است بعد از زمستان بهار است آه؟ بروش شد یا نه, نه. چون گفتش ازا بلقل اسر و مجهوده فسق اندزاکه به یوسره سریع علم ترنه سشتا الفزی یطلو حسعد و ربیع بدی. بدی بدی یعنی زیبا و انشد اسحاق ابن بهلول الغازی باز اسحاق ابن بهلول گفته فلا تی و این اعصر تا یوما فلا تی اص و این اعصر تا یوما یعنی چی؟ معیوس نشد اگر چه روزی بگید فقیر شدی در سختی افتادی فقط ایسر تفی دهرن تفیلن یه عمر زیرا یه عمر در آسایش بودی ها همش که سختی نبود ها یه به سختی افتادی چطور یه سختی رو میبینی هزاران هزار خوشی و خوبی و سلامتی رو نمیدیدی اگر بخواهی حملم بکنی باید حمل کنی به اون آسایش که مثل اونها نشه. نه این سختیه میگه معیوس نشد اگر در سختی افتادی و این احسرته اومن ان شرطی است. اگر در سختی افتادی فقط جزای شرطه فقط احسرته اگر این احسرته اومن فقط عیسرته فیدهرن یه روز به سختی افتادی یه عمر راحت بدی اونا چه فراموش کردی فلا تی اس و این احسرته اومن فقط عیسرته فیدهرن تا ویدی ولا تزنن براب بکز زن نه سوئن زن نه سوئن مفعول مطلقه میگه گمان نکن گمان نبر به پروردگارت گمان بد به پروردگار بعد گمان بگو نشو فهن الله اولا بالجمیلی زیرا خدای تعالی شایسته تر است به گمان خوب یه اون به داده خوردید گمان خوب ببرد یه عمر داده خوردی یه روز هم حالا نداد اون یه عمری که داده رو گمان ببر نه این یه روز رو فهن الله زیرا این فه یعنی زیرا فای تحلیل زیرا خدای تعالی شایسته به گمان خوبه بل جمیل یعنی به زن نده جمیل به خدا خوش گمان باش فهن الله عصره اتباوهو یسارون زیرا این سختی و هر سختی یتبه و هو به دنبالش بگید آسایش میاد و قول الله استقو کل قیلن و گفته خدا از هر گفتهای بگید بولا تره میگه فعضا فرخته فنسب و الاربکه فرقه معلومه دیگه ازا فرخته نگفته فرخته از چی ها حالا تو این سوره میشه امر رسالت هر چیش فنسب یعنی به یه امر دیگه دارد از تسبیف فارغ شدی به همد مشغول شد از همد فارغ شدی به نماز مشغول شد از نماز فارغ شدی به تبلیغ ارشاد مردم به قرآن فعضا فرخته فنسب و الاربکه فرقب مهم بینه و الاربک الاربک مقدم شده مفید حسره و سجن هم درست کرده هم فایده لفظی داره هم فایده باید. این وی الاربکه که اطفا به جای فنسبه شدی یا نه اون فای فرقب هم به نظر میاد فای زایده باشه برای تحکید چون که متعلق به فرقبه بعضا میگن بوده و اما الاربکه فرقب یا امای مقدر در تقدیم میگره این فا در جوابه میگه معناهو اضاف فرقته حالا نگاه کنید اون فرقته مفعولش چیه؟ من گفتم مطلق ذکر کرده ذکر نکرده هرچی هر کار خوبی لذا اینا که درن تفسیر میکنن میان مستاغ نشون میدن معناهو فعضا فرقته من از سلاط المکتوبه اگر از نمازهای واجب فارغ شدی فنسب کف دعا یا فنسب کف نوافر مشغول به نمازهای مستحبی و دعا بشو. مسئله الیه فالمسئلهت یؤتک. رغبت کن به سوی خدا درد سوال و درخواست از او یؤتک و بد میده. یکی از کزماس عن مجاهد و قتاده و زهاک و مقاتل و کلبی و هوعل مروی و انبی جعفرن و ابی عبدالله آه؟ از ابی جعفر امام باغر و عبی عبدالله امام صادق هم این روایت شده ممنون شده نه یعنی یکی از مسادقشو نشون داده این تفسیر یه یکی از مسادقشو نشون داده یعنی از کار خیلی فارغ شدی نشین کار بعدی از امر رسالت مشغول شدی فارغ شدی به امر امامت بپرداز و معنی انسب معنای انسب فنسب منن نسب و هوت تاب یعنی مشغول شو به یه کار دیگه یعنی ای لا تشتغل به راحت یعنی اگر فارغ شدی از یه کاری استراحت نکن لا تشتغل به و قال از زهری او گفته اذا فرقت من الفرائز فدعو بعد التشهد به کل حاجتک گفته اگه فارغ شدی از نماز های واجبت بعدش دعا کن بعد از تشهد و سلام به کل حاجته این چیزی که معمولا هست بعد از نماز دعا میکنن گفته اون فنسب یعنی دعا کن. حاجته دعا و قال از صادق دعا فی دو برس و انت لسون گفته این فنسب یعنی دعا کن در پس نماز از سلام. هن نمازی که میخونی بعدش دعا تو بکن و انت جالس. و حالان که سر جای نمازت نشستی. یعنی هنوز حیعت نمازگذاره به هم نزدی. و قیل هم معناهو. قیل گفته ها. معناهو فعضا فلقت من الفرائز فنسب فی قیام لیل نوافل. ابن مسعود از از ب... خیلی بعدی نگفته اون بالایی هم همینو گفته بودن دیگه اون تازه گفته نوافل اونا گفتن دعا گفته اگر از فواهیزت فارغ شدی مشغوله به نوافل و نماز شب و وقیل معناه و فعضا فرقتم من دنیا فنسا فی عبادت ربکه و سله. یعنی اگر از کارهای دنیا همونوزه نه که کار دنیا افره خلاصی یه سری هوایج دنیاوی هم داره انسان میگه اگه کالای دنیا تمام شد آن شد ایشون میگه فنسب فی عبادت ربک وسل مشکول عبادت پروندگار شد و نماز بخد. ان مجاهد ول و قیل فعضا فرقت من الفراعز فنسب فیما ما الله و فیه من الاعمال وسل همونه وقتی فارغ شدی از فراعز مشکول شد با آنچه که خدا ترغیب کرده تو رو در اون از اعمال. اعمال خیلی که خدا تو رو ترغیب کرده و سلم مثلا قرآن بخواه نماز بخواه ان ابن عباس و قیل اعضا فرقتم این جهاد ادائک قیلی گفته منظور اینه که وقتی از جهاد دشمنانت فارغ شدی ها شد از جهاد اکبر فارغ شدی فنسبل عبادت لله مشغول جهاد اکبر بشو آه، که عبادت خدا هست و تحذیب نفس اینو کی گفته ان الحسن و ابن زید و قیل فعضا فرقتم این جهاد العدا فنسب به جهاد نفسک همون. از جهاد از که فارغ شدی مشغول به جهاد اکبر بشو اینو دیگه نگفته و قیل فعضا فرقتم این عداء رساله فنسب لطلب شفاعت اگر از رسالت فارغ شدی مشغول شد به طلب شفاعت برای منحکاران اومد برای هدایت مردم شفاعت و سوئله علی ابن تلهه علی ابن تلهته انها زهل آیه. علی ابن تلهه ازش این آیه رو پرسیدن فقاله القول فيه کسی رو گفت حرف توش زیاده اینجا دیدید دیگه دید. همه شون مستاق, مستاق مستاق مستاق یه سیچل تا رو کرد و قد سمعنا انهو یغول. یغال و ما شنیدیم که گفته میشد شد ازا سحه تا ازا صححته. صححته. فجعل صحتک اگه و فراغ اگه نسبن فل یعنی وقتی سالمی، صحیحی، مریض نیستی هنگامی که صحیح هستی صحت و فراغ خودت را در عبادت بگذار زکات بقول معروف سلامتی خودت را مشغول شدن به عبادت قرار بده و یدول و علاهازا ماروویه میگه دلالت میکنه بر این مطلب آنچه که روایت شده هن شوره هم م به رجل اینه. شوره قاضزی ها، شوره قاضی از کنار دو نفر رد شد. یاطر آن یاطر آن یعنی چید؟ با همدیگه کشتی میگیره من کشگی رو سرگردن همدیگه رو میگیره اون اینو میگیره اینو قفل میشن دیگه. نه این میتونه دیگه کاری بکنه نه؟ اون. میگه وقتی دید دو نفر دارن اینطوری با هم کشتی میگیرن؟ فقال لیس به هازا امرون فارق گفت تو این کار فراغ وجود نداره اینو نگیر انداخته اونم اینو گرفتی یا نه پس پنامولین منظور اینجا چیه بگو فراغ یعنی چی یعنی وقتی درگیر نبودی سرگردن همدیگر را نگیر یعنی این داستان یعنی این تا هیچ موقع فارق نیستن همیشه درگیرم هم. پس بنابراین فرق فرقته یعنی اگر بگو از کشتی با مشکلات فارغ شدی فنسب مشکول شد پس منصوب یعنی اون فنسب یعنی چی؟ یعنی که تو بگو دیگه با مشکلات نیستی انما قال الله و سبحانه میگه زیرا خدای همانا خدای سبحان گفته فعضا فرقته و الارب بکه فرقم یعنی این دوتا اصلا هیچ وقت مشغول شدنشون تموم نمیشه این تو سرگردنشون تو همه ای فرفه منظور اینه فرفه که ک الاله فرقب الاله یعنی فرفه هوایج ک الاله ربک هوایجتو فقط ببر پیش خدا چشمت به دست خدا باشد و بس ولا ترفعه ها ال احد من خلقه چون حسره دیگه الاله مقدم شد یعنی هوایجتو ببر پیش خدا و هیچ کسی از بندگان خدا نبر و قاله اتا و تذره را الیه راه بن منن نار یعنی تذره کن زاری کن به سوی خدا در حالی که میترسی از جهنمش و راه را بن و در حالی که تمایل داد به بهشترش و سلاله حالانه نبید و خب خب سوره بعدی سوره زوها خوبه؟ آه. نه نه، تموم نداره، تموم نداره نداره